مارش های دانش برنامه‌ای از ارجمند استادان را پژوهشگران ایثار غنوغن افتخارمان همیانو گرامی با درود فراوان امیدوارم که هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و آماده هفته آینده باشید خوشحالم که باگایی با شما برسمم که در برنامه امروز دو دانشمند پژوهشگر جوان سرکار خانم نغم دورانی برای آقای دکتر علی جزیره ای برای ما پیرامون ژنتیک و بررسی ها و پژوهش های خودشون خواهند گفت سرکار خانم نغم دورانی لایسنسد اند سرتیفاید ژنتیک کاونسلر مشاور ژنتیکستان در بخش کودکان دانشگاه یوسلی عصبم دادن آگاهی و مشاوره ژنتیک برای کودکان و بزرگسالان، پژوهش‌های ژنتیک رو هم هماهنگ می‌کنم. ایشون پرمونی ژنوتایپ فنوتیپ ریلیشنز رو به ته ساخت ژنتیک و تظاهرات آن در بدن و عملکرد اعضای ما برسی می‌کنم. دیگری که در کلینیکال ترایل ها، در پژوهش‌های بلندمدت بیماری‌های متابولیک مانند چاقی، دیابت شرکت دارم. کارهای مرکز ژنشناسی یوسیلر رو هم انجام میکنن و بخشی از کارهای خانم نغم دورانی روی تعیین آسیب‌پذیری ابتلا به سرطان در کودکان است. پیدیاتریک کانسر پردیسپوزیشن دیسوردرز. ایشون مشاور مرکز اگزوم سیکونسینگ لبهتوری هستن. خوشحال بیشتر برای ما خانم گفت راجب بود. برای پزشکان رزیدنت ها، فلوها، متخصصین ما سخنرانی های تکنیکی و تخصصی روی می دادن. لیزون هستند بین پزشکان مشاوران با لیه ژنتیک بیماران، از و انجام نماید لیه مشاوران ژنتیک، انجام لژنتیک انسانی آمریکا هستند و در آنجا فعالیت دار. با وجود جوان بودنشون، مقالات علمی و تکنیکی متعدد در نشریات متفرم آمریکا چاپ کرده. سالگرد خانم نرم دورانی به برنامه امروز خوش آمدید. سلام دکتر متشکر از دعوتتون، و سلام خدماتشون عزیزانگون عزیزتون. امروز من بحثی رو که انتخاب کردم براتون صحبت می‌کنم راجع بهش اگزوم سیکونسینگ هست یک تکنیک جدید هست در شناخت بیماری‌های ژنتیکی و موارد استعمالش در ژنتیک پزشکی دلیل اینی که این مبحث رو انتخاب کردم اینه که آون که آخرین پدیده ای هستش که ما در ژنتیک پزشکی استفاده می کنیم برای تشخیص بیماری های ژنتیکی و یه مقداری چون جدید هست حدود 2 سال هست که از لازوب بالینی ما این تست رو استفاده می کنیم احتمالاً ناشناخته است برای بسیاری از شنونده ها و خوبه که این اطلاعاتی راجع بهش داشته باشن و این تست موقت هستند مطابق جنتیک که یک نتانهای تکاملی در زمینه تستهای جنتیکی هست بلکه یک انقلابی در زمینه تشخیصی جنتیک است و من الان خودم میگم که چرا این اینطوریه ولی قبل از این که شروع ممکنم، دلم میخواد یه سری مفاهیم رو بر تون توضیح بدم که همه ما بغل معروف to be on the same stade on the same page اگه اگر من این لغت رو استفاده میکنم به اصلاح میساندرساندینگ راجعش نباشه اول اینکه وقتی ما راجع ماده ژنتیکی در بدن صحبت میکنیم به کل ماده ژنتیکی در بدن میگن ژینوم ژینوم ام ژینوم از کروموزوم ها تشکیل شده کروموزوم ها از ژن ها تشکیل شدن ماده تشکیل دهنده ژن ها دی ان ای هست یا دی ان ای ها از باز های تشکیل شدن که خود ژنتیکی رو می‌سازن. چهار باز هستن. باز در مقابل اسید منظورم هست. چهار باز هستن که DNA رو می‌سازن. باز آدنین، گوانین، سیتوزین و تایمین که حالا اسمشون مهم نیست، ما اینها رو مخفف می‌کنیم به اسم A T G C می‌شناسیمشون و کد ژنتیکی یه کد سه حرفی است که این سه تا باز هر سه تا بازی با همدیگه می‌شینه و کدی رو درست می‌کنه که یه ماشین در بدن به من ماشینی که ترجمه کننده کد دینه هست میاد و این باز ها رو میخونه هر ستای اینها رو به عنوان کد میخونه و یک اسید آمینه رو میاره و اسیدهای آمینه که در واقع سازنده پروتئین ها هستن بغل همدیگه زنجیروار قرار میگیرن و پروتئین رو میسازن این پروتئین ها با پروتئینی که میخوریم فرق داره من سوال ها میشه که اگه پروتئین بیشتر بخورم حالا ژنوم بهتر کار میکنه یا اصلا ربطی به هم دیگه نداره من مظلوم ما فقط این هستش که محصول نهایی ژن ها پروتئین ها هستند و سلاه ی سریعا دوباره بریم از ژنوم به کروموزوم میرسیم از کروموزوم به ژن میرسیم از ژن به دی ان ای دی ان ای از باز ها تشکیل شدن و باز ها پروتئین های بدن رو می سازن مفهوم دومی که میخوام خیلی واضح بشه برای شنوندگان مفهوم بین ژنتیک و وراثت هست ما این‌ها رو معمولاً مترادف استفاده می‌کنیم ولی همه بیماری‌های ارثی همه بیماری‌های ارثی ژنتیکی هستند ولی همه بیماری‌های ژنتیکی ارثی نیستند به عبارت دیگه بیماری‌های وراثی زیرمجموعه‌ای هستند از بیماری‌های ژنتیکی اذا میگم این مترادف هست که ما استفاده میکنیم ولی من برای صحبتی که خدمتتون میکنم کلمه ژنتیک رو به کار میبرم و بحث من راجبه مساله وراثت نیست اگر سوالی باشه جواب خواهم داد ولی بحث ما راجبه وراثت نیست من به همه بیماری ها میگم بیماری که ژنتیکی مساله سوم اینه که وقتی شما به یک ژن نگاه میکنید ژن قسمت های مختلفی داره یه قسمتی داره که خودش ژن رو کنترل می‌کنه. اون قسمت رگولتوریش هست. یه قسمتی هستش که اون پروتئین رو کد می‌کنه که الان خدمتتون توضیح دادم به اون قسمت میگن اگزون و فاصله بین اگزون‌ها رو بهشون میگن اینترون. ام وقتی که این ماشین ترجمه دی‌ان‌ای میاد که این کد رو بخونه اون اون اینترون‌ها اون فاصله بین اگزون‌ها رو قیچی می‌کنه. اسپایسشون می‌کنه. و در واقع اون اینچنها وارد کد پروتئین ها نمیشن نه اینکه مهم نباشن ولی اطلاعات ما راجع به قسمت های مختلف ژن به یک اندازه نیست ما راجع به اگسان ها بیشتر از هم می دونیم و تحقیقات نشون داده که 85 درصد بیماری های ژنتیکی که راجعشون تحقیق شده و ما میشناسیمشون اون تغییر ژنتیکی که باعث اون بیماری شده در اگسان ها اتفاق می افتد ا uh, و اصطلاحی در هسته ژنتیک به بقیه اون قسمت‌هایی که برای پروتئین کد نمی‌کنن اصطلاحاً میگن جانک دی ان ای uh, ولی هیچ چیز در دی ان ای جانک نیست فقط اطلاعات ما نسبت بهش کم هستش حالا uh, تستی که من راجعش می‌خوام صحبت بکنم بنام اگزوم سیکونسینگ هست این کلمه ام هم که شما در بعضی مواقع می‌بینید آخر کلمات میاد مثل جینام مثل اگزوم فقط به کلیتش داره می‌کنه از جین وقتی همه ژن‌ها رو می‌خواید راجع به صحبت کنیم میگین جینوم اگزون اکسان، همه اگزون‌ها رو می‌خواید راجع به صحبت کنیم میگین اگزوم تستی که راجعش صحبت می‌کنیم اگزوم سیکونسینگ هست سیکونسینگ به معنی خوندن کد دی ان ای هست یعنی برید شما مثل اینکه یک کتاب رو لغت به لغت حروف به حروف بخونید. این رو بهش میگن سیکونسینگ. اگزوم سیکونسینگ کاری که میکنه میره تمام ژنهای بدن قسمت اگزوم ژنها رو همه رو در آن واحد میخونه. چرا من گفتم این تحولی در آ تست ژنتیکی به خاطر اینکه به طور سنتی وقتی ما تست رو انجام میدیم برای تست ژنتیکی وقتی شما یک ژن رو میخواهید برید بخونید فقط یک ژن رو میخونید یعنی میرین اگزون اون ژن رو مطالعه میکنید ولی این تست میاد و تمام اگزون های تمام ژن های بدن به طور تخمینی ما 20000 ژن در بدن داریم در آن واحد این رو میخونه و این از تکنیکی استفاده میکنه به نام نیکست جنریشن سیکونسینگ که مثلا میونه که شما یه کتاب رو فرض کنید من یه کتاب رو بدم به یه نفر 100 صفحه است بگم شما 100 صفحه این کتاب رو بخونید حالا من اگر 100 نفر رو بیارم و بگم شما همینه کتاب رو بخونید هر کدومتون یک صفحه رو بخونید ببینید چقدر خوندن این کتاب سریع میشه نیکست جنریشن سیکونسینگ یک همچین کاری رو میکنه این تکنیکی هست که در اگزوم سیکونسینگ استفاده میشه و از این تکنیک استفاده میشه که همه اگزوم های بدن در آن واحد خونده بشن من وقتی با مریسا صحبت میکنم همیشه یک مساله رو یادآور میشم بهشون میگم من جن صحبت میکنم. اگر من راجبه 20000 ژن صحبت می کنم ولی اگر طرفای من هیچ چیزی یادتون نموند یک کلمه میخوام یادتون بمونه که با همه کامل بودن این تست که میگم پدیده است در این ژنتیک یادتون باشه که این تست کامل نیست و دلیلی نداره که حتما ما بتونیم به اصطلاح دلیل بیماری ژنتیکی رو حتی با اینکه این تست اینقدر کامپرنسیو هست پیدا بکنیم دلایلش چی یعنی محدودیت داره می‌دونه هر تستی که ای محدودیت داره. اولین که من گفتم این تست فقط روی یک سانه است یعنی یک سوم هر می‌خونه. همیشه هم پاسیبیلیتی هم پروبریلیتی یعنی هم احتمال چی میگن؟ هم ممکن بودن و هم احتمال این هست که شما تغییری در جاهای دیگه ژن در اون اینترون ها در قسمت های رگولاتوری ژن داشته باشید که باعث بیماری بشه ولی این تست قادر نیست که اون قسمت های دیگه رو به چشم نگاه بکنه و آنالایز بکنه این یکی از محدودیتشه محدودیت دیگه اش اینه که دانش ما محدود است یعنی اینکه مراجعه 20000 ژن صحبت می کنیم ولی در واقع رجب 3000 تای اونها هست که اطلاعات نسبتاً پیشرفته ای داریم بسیار زمان هست وقتی که ما این داده ها رو آنالایز می کنیم هفته یک بار در UCL یک ژنومیکس بورد ما داریم که یه چیزی بوده 15 بیست نفر متخصصین ژنتیک، مشاورین ژنتیک از آزمایشگاه‌های مختلف میان می‌شینیم و داده‌ها رو بررسی می‌کنیم. خیلی زمان‌ها تغییراتی رو در ژن می‌بینیم که نمی‌دونیم چه معنی‌ای دارن. و این محدود بودن دانش ماست. یعنی چیزی در مقابل شما هست که نمی‌تونید از لحاظ بالینی تفسیرش بکنید. وقتی که این ریپورت میاد بیرون این داده هایی رو که ما از حالت بالینی نمیدونیم چی هستن به عنوان variant of unknown clinical significance یعنی تشخیص بالینی درست نمیتونین راجع بهش بدین ولی به عنوان VUS در روی ریپورت میخونینشون. بسیار سپاسگزارم دکتر برین بی اگیل باگاتی. امم با <مزدار> حصه تو داد نكنه عجب چاي معطر خوش طعمه نوش جان اسمش شي جديده نه بيش از 80 سال قدمت داره چاي گلابي محصول هندستان در انبهاي چاي گلابي قلمي گلابي باروتي ممتون فيو دارجيلنگ با چاي سبز ممتاز در بازار آدم يا چاي نمينوشه اگرم مينوشه باید خوبشو بنوشه پخش از شركت ام اي ام تي خدا کنه این دفعه دیگه خیلی از این مترش ایراد نگیره عالم خانوم سلام تازه چه خبر من به شما گفتم که این بچه سر کلاس حرف گوش نمیده همش بازیگوشو سر به هوایی میکنه پس چرا کاری نکردین وا خانم معلم من اون روز بعد صحبت شما بچه رو بردم پیش دکتر گفت ممکنه ایدی اچ دی باشه و الانم مدتیه که داریم دارو مصرف میکنیم ولی میبینید که نتیجه ای نداش تجربه به من ثابت کرده خیلی وقتو مشکلات دیگه ای وجود دارن که علائم مشترک دارن شما به یه دکتر ادیولوژیست نیاز دارین یا پزشک شنوایی با تخصص اودیٹری پروسسینگ دیسوردر اون میتونه با انجام آزمایش تلazim قدرت شنوایی و توانایی درک این بچه رو تشخیص پیشکی کی باید بره؟ خانم دکتر شرضا دکتر متخصص اختراعات شنابویی و ادراک هستند. ایشون باز مایشه دریل اطلاعات درستو در اختیار تون می‌زنند تا پسرتون مداوای درستو بگیره. تلفن خانم دکتر شرضا دکتر متخصص اختراعات شنابویی و ادراک هستند. ایشون باز مایشه دریل اطلاعات درستو در اختیار تون می‌زنند تا پسرتون مداوای درستو بگیره. 811 989 901 پس گفتیم 811 989 901. اوی دانش برنامه‌ای از انجمن استادان را پژوهشگران ایداری یونی میشنه گنجمن پای گوफ्टर سرکارت هم نغم دورانی هستیم لایسنس از سروو جنتیک کانسلر پارشکو دکن یوسید که برای ما شروع کردن خیلی قشنگ از الف پای و فرست تیپج یعنی گفتن که ژنای ما چجوری درست شدن و بعد رفتن روی روشای جدید شناسایی ژنها و اینکه اینها چگونه با هم اینتراکت میکنند و میگفتن خوام دکتر بسیار سپاسگزارم بعد ادامه دوباره روش باکسوم سیکوانسینگ صحبت می کردیم. می گویم ما خرید پدیده ی تست ژنتیکی از ژنتیک پزشکی استفاده می شه. ولی باتر در بخش تحقیقات و اونجا رأی دیم که این تست با وجود اینکه 20000 جنر رو در آن واحد آنالیز می کنه، ولی محدودیتایی داره. وقتی محدودیت هاش چیکی این هستش که فقط باکسوم هانیگاه می کنه و قسمت های دیگه ای جنر اگر تغییری درش باشه نمی تونه پیدا بکنه. و محدودیت دومش اینه ازش که نوآرچه ما، یادداشت ما محدود هستش و بسیار زمان هاست که ما می‌بینیم چیزی پیدا می‌کنیم، ولی نمی‌توانیم از لحاظ بالینی تفسیرشون بکنیم. و این ها رو گذارش می‌دم. یعنی توی اون گذارش بالینی که داده میشه به ماریز، این ها رو بنوانه variant of unknown clinical significance ما گذارش می‌کنیم. بعضی وقتها پزشک که مخصوص وقتی این را می‌بینه، ممکن است بتونه کارهای بالینی دیگه ای بکنه که ببینه آیا این وریانت ها میتونن از لحاظ بالینی اه اهمیت داشته باشن یا وریانت های خوشخیم هستن ولی بعضی وقت ها هم باید صبر بکنیم و فقط ببینیم که آیا در آینده گزارش هایی میاد بیرون که بیماران دیگری با دیگری با این وریانت ها گزارش بشن که شما بتونید تصمیم بگیرید که آیا اینها پاتوژنیک هستن یعنی بیماری زا هستن یا بیناین هستن خوشخیم هستن چیزی دیگه‌ای که مهم هست راجبه این اگزوم سیکونسینگ این هستش که این تست یه تست خونی مثلا همین تستای دیگه میمونه مقدار خونیه که براش میدین خیلی کمه 20000 تا ژن رو میخوان آنالایز بکنن از وقتی مریضه از من میپرسن چقدر باید خون بدیم یعنی یه قاشق سوپخوری خون هستش مقدار سیات نیست ولی ریسک‌های برای خودش داره اول اینکه وقتی راجع به اون VUS اون variant of an clinical unknown clinical significance اون صحبت می‌کنین بعضی وقت‌ها شما مجبور هستین بقیه افراد خانواده‌رم تست بکنید که ببینید آیا افراد سالم هم این این تغییرات رو دارن یعنی به عبارت دیگه segregation یا بیماری با این variant ها همزمان دیده می‌شن در مریض که بتونید تصمیم بگیرید که آیا این بیماریزا هست یا نه شما وقتی مریض‌های ژنتیک رو می‌بینین، یک از مسائلی که ژنتیک داره اینه که شما فقط راجبه خودتون صحبت نمی‌کنین. ژنتیک یک مسئله فامیلی است. اگر بیماری در کسی پیدا بشه، بچه‌های اون نفر اون شخص در ریسک هستن. خانواده‌اش در ریسکش، پدر، مادر، خواهر، برادر و اینها یه مقدار از زمان جوانی ممکنه برای خانوادهها سخت باشه وقتی شما در مواجهه جنتیک میکنید و اینها را توضیح میدین این یکی از ریسکهای این این تست است اشکال ممکنه بقیه افراد فامیل رو با خانه تست بکنید و این میگم از زمان جوانی ممکنه یه مقدار برای خانواده مشکل باشه یکی دیگه از مسائلی که بسیار بسیار مهم از روی این تست هنگ که شما وقتی مادر جنتیکی یک نفر رو بهش نگاه میکنید و هدف این تست است که شما بیماری رو رابطه یک مریض تشخیص بدید اما گاهی شما یافته هایی پیدا می‌کنید که مریض این بیماری رو نداره اون اون علائم این بیماری رو نداره ولی ممکنه این بیماری در سال‌های آینده اتفاق بیفته یه مثال براتون بزنم مثل سرطان سرطان به فرض مثال کولون روده بزرگ شما ممکنه ببینید که این شخص تغییری دارد در جنگش که در آینده ممکن است مبتلا به سرطان کولون بشه حالا چی؟ فرض کنید بچه یا ماده برای مثلاً عقب‌مدنگیای مثلاً ذهنی و جسمی و شما یه دفعه پیدا می‌کنید که آه این, این فردی پری‌دیزپوزیشن داره برای کانسر حالا و یا چه کار بکنی؟ مسائل اخلاقی دورور این تست بسیار زیاد هست در هر میتینگ ژنتیکی که شما برید الان محور صحبت اگزوم سیکونسینگ هست ایتیکال کوشنز و هم اون زوایای مسائل تکنیکی ش ولی اینسیدنتال فایندینگ یعنی این این یافته های تصادفی یکی از مسائل بزرگی هستش که مدام پنجره نرم می‌کنیم باش در اگزوم سیکونسینگ در حال حاضر گایدلاینی که وجود داره اینه که شما هر در هر جای برید که این تست رو به شما آفر بکنن باید اول اینکه شما یک کانسنت امضا بکنید و این کانسنت به شما اجازه میده که تصمیم بگیرید آیا می‌خواینین یا یافته‌های تصادفی به شما گزارش بشه یا نه یعنی آپت ان اور آپت اوت در که من می‌خوام یا نمی‌خوامشون و هست خانواده‌هایی که نمی‌خوان بدونن که در آینده ممکنه چه اتفاقی بیفته و من بگم البته این اتفاقاتی که ما در اینجا بحث صحبت می‌کنیم هر چیزی نیستش اینی که مثلا همه مثلا دیم شیا که کاری راجب بشنم انجام بدن، اینها اصلا جز Incidental Finding حساب نمیشه. اینها Incidental Finding که اصلا کشمش از پزشکی میتونید کاری راجب بشن انجام بدین. Medically actionable یه کاری میشه براش انجام بدن یا یه پیشگیری میشه که یا دارویی براش هست، اینها به عنوان Incidental Finding حساب میشنند و ماریز جزء داره که انتخاب بکنه که میخواد اینها رو بدون راجب بشی یا نه. ریس که دیگر این هستش که biological relationship یعنی اون رابطه خیش آوندی رو در این تست شما می تونید ببینید اگر پدر بچه پدر بچه نباشه مادر مادر بچه نباشه یا خیش آوندی داشته باشه در فرهنگ ما مرسوم هستش ما ازدواجی بین خیشی زیاد می کنیم، فامیلی زیاد می کنیم اینها در این تست نشون داده می شه و این یکی از مواردی که خودمان در امروزی که باید حتماً توذات بکنین راجبش به خاطر اینکه هستن کسانی که اینها رو به عنوان رازهای خانوادگی نگاه می‌دارهن و اگر آگاه نباشن و یک دفعه اینها روی ریپورت بیاد بعد درد سرساز خواهد شد ام این یک شمعی بود از کاری که اکسم سیکونسینگ می‌کنه حالا من برگردم به نکته دوم اینه که در کجا ما این در ژنتیک پزشکی استفاده می‌کنیم ام اول اینکه یه نکته مهم اینه که میگم تست رو وقتی خیلی راجع به صحبت میکنن من از متخصصین شنیدم بیا از مریض ها میگن خب چه تست خوبی بییم همه رو این تست رو راجوش بدیم این هم مثل همه ی تست های دیگه میمونه که شما وقتی مریض رو میبینید نه هر مریض مریضی که مبتلا به سرطان است حتما باید شیمی درمانی بگیره یا حتما باید جراحی بشه این هم باید حتما توسط متخصص بیمار دیده بشه و ببینه آیا اصلا کاندیدای این تست هست یا نه اثر فنی که شما 20000 تا ژن رو دارین نگاه میکنید دلیل این نداره که این تست حتما بتونه جواب رو پیدا کنه حتما مریض کاندیدا این تست باشه مثالی براتون بزنم خیلی هم ممکنه با بیماری اوتیسم آشنا باشن بیماری هست نورودیو developments حال دستگاه اسب رو تحت تأثیر قرار میده و بچه ها معمولاً نرخاتی گفتگویی دارن، منظایی هستن. اگر بچه به طور فقط isolated اتیسم داشته باشه، این تست کاری نمیتونه انجام بده. اتیسم، اتیسم آی آی isolated بیماریی است که الان نشون داده شده، جنهاي بسیار زیادی درش کار می کنند و ا عواملی محیطی هم درش داخل هستند اینه که این تست نمیتونه کمکی بکنه چون میگم اینتراکشن بین ژن‌ها هستن فقط یک ژن نیست که تغییر پیدا میکنه و گفتگوی بین ژن‌ها هستش که احتمال داده میشه که اون اتیسم رو به وجود میاره ولی بچه‌هایی هستن که اتیسم دارن و سیمتوم‌های دیگه دارن علائم دیگه‌ای هم دارن ممکنه عقب‌موندیگی‌های دیگه‌ای داشته باشن یا مسائل دیگه ذهنی بدنی داشته باشن این افراد کاندیدای این هستند که این تست برایشون انجام بشه. به همین دلیل من اگر متخاطفینی هستند که صداهای من رو میشنوند یا اگر خانوادههایی هستند که صداهای من رو میشنوند و فکر میکنند که خوب احتمالاً بچه من یا کسی که در خانواده من میشناسم بیماری ژنتیکی داره قبل از این که فکر بکنند که خوب این تست هات ما مجبورم این تست رو بگیرم هات من هات من به متخاطفین ژنتیک روشروب بکنید. و اجازه بدید که یه ا evaluations انجام بشه و ببینن که آیا این تست باید انجام بشه یا باید تستهای دیگه‌ی جنگتی که در مورد ماریز انجام بشه که بهترین نتیجه گرفته بشه مثالی این هستش که نهایتا شما می‌خواید بهترین نتیجه رو بگید و می‌خواید تشخیص بدید که بیماری چی هستش این تست ام قدرت اینو که بعضی از تغییرات ژنتیکی بعضی از میوتیشن ها رو پیدا بکنه نداره یک سری تغییراتی در ژن ها هستن که تغییرات یک حرفی نیستن یادتون هست که من گفتم ژن‌ها از DNA تشکیل شدن و DNA از بازها تشکیل شدن و اون بازها وقتی شما میگی تغییر ژنتیکی انجام میشه یعنی شما یک باز مثلا فرض کنید در یک نقطه از ژن باید حرف A قرار گرفته باشه این حرف A ای تغییر میکنه و میشه T مثلا و این باعث میشه که همون یک حرف که تغییر میکنه تمام کار ژن رو هم میخوره در نقاطی از ژن هست بعضی ژن‌ها این همه ژن‌ها نیستن بعضی ژن‌ها هستن که این حرف‌های این بازهای ژنتیکی سه به سه کنار هم نشسن و تیک تکرار می‌زنن مثلا دارین شما ای جی جی دوباره یک ای جی جی دوباره ای جی جی و ممکن 20 تا از این تکرار داشته باشید اگر این 20 بشه 21 اون وقت بیماریزا میشه این تست اکسون سیکوانسین نمیتونه این تریپل ریپت ها رو پیدا بکنه یعنی اون هم یک جور میتژشن هستن ولی این تکنولوژی اکسون سیکوانسین نمیتونه اون ها رو پیدا کنه بعضی بیماری های ایتاقسیا ها، بیماری های نورالوجیک بیماری های مثل فریجول اکس که یک بیماری که آگاه مونده گیزه نی در خودشان پسارهای ایجاد میکنه این ها رو شما نمیتونید با این تست تشخیص بدید به همین دلیل باز من برایم گرفتم در نکته قبلی که هضمان هضمان اگر کسی فکر میکنه که بیماری جنتیکی در خانواده از بیک متقاضی از جنتیک مراجعه بکنید و اجرا بدهید که اول اولویشن انجام بشه بعد باید تون بتونن که چه تستی رو باید انجام بدیم و نقطه آخر اینه که این تست فقط زمانی خوب هستش که یعنی نه فقط زمانی ولی بیشتر مورد استعمالش در مورد بیماریهای بسیار نادره ژنتیکی هست یعنی شما اگر یک بیماری ژنتیکی رو می‌بینید که علائمش خیلی واضحه و و تست بالینی براش وجود داره که شما فقط برید اون یک ژن رو تست بکنید بسیار به مغرونه بسرفه تر هست که شما برید و فقط اون یک ژن رو تست بکنید به جای اینی که بخواید 20000 ژن رو تست بکنید به خاطر اینکه این این تست از لحاظ به اصطلاح گران هستش ری چیزی نیستش که و الان کمپانی های بیمه هم ممکن گاه گدری چیز نکنن اپرووچ نکنن و همین دلیل باز من بر میگدم به نکته اول که حتماً حتماً اگر کسی چه موضعس چه خانواده فکر میکنند که بیماری جنتیکی در خانواده هست حتماً حتماً موضعس جنتیک رو اول ببینید و بعد موضعس جنتیک برایتون تصمیم خواهد گرفت که چه دستی بیشتر به نفعتون هست و بهتر میتونه باز تشخص بشه متشکرم فوق العاده خان دخته بیان دز است پس که از اینجا برویم به آگهی رو باختی با حضور در پرژنس اسکوئر در وست‌وود حال و هوای وطن را احساس کنید همه جانم وطنم وطنم وطنم وطن بوشت یوناتورز آژوانندی بهترین تورهای مختلف به اسرائیل و اروپا باقازاین کوشن تور 11 روزه به ایتالیا و فرانسه 11 آگوست تورش ۶۰ به آبشار نیویورک را، ۴۰ هزار جزیره و نیویورک هفت سپتام. تورش سه نهایی پونزده موزه به سایر ترکیه، نهلوان. برای اطلاعی کشید با ترکیل پانصد و شنزده، ییس و شنزده، چهل نه و ده هفت ماس بگیرید و یابد سایت یونا تورس دای همبراجی کنید یونا تورس. شام اباز می ماهفله شاهنشودان زوجی ندارد. ای خوشان شامی که برف روزد، ویرانه ای را. سازمان خیریه امید کودکان دهمین ده سال فعالیت خود در زمینه آموزش و پرورش کودکان نیازمند ایرانی را با حضور میهمانان برجسته و با اجرای هنرمند محبوب کیوان شنبه 27 سپتامبر در هتل هیلتون ارواین در اورنج کاونتی جشن میگیرد سازمان امید کودکان در طی 10 سال گذشته در کشورهای ترکیه، ایران و جنوب کالیفرنیا به آینده سازی کودکان نیازمند پرداخته و با عکس‌های خود فعالیتش برای تهیه بلیط و اطلاعات بیشتر با تلفن 714 545 350 714 545 350 تماس گرفته و یا از وایتای کودک داش اینترناسیونال دوت اورگ دیدن فرماید. K, K I R N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا اینجا K I R N ششصدو هفتهده A M سیمی وایلی لس آنجلس. مارزهای دانش. برنامه‌ی از آموزشگران و پژوهشگران ایران. کنار گاریانوی شرانتوی راشمان. آست سرکار خانمین نقل دورانی شنیدیم در مورد اکسام سیکوانسین و اینکه چه مغز بینیم دوباره تست جنتیکی غیره تلفن ها رو باز می کنه آیدینجان سیصد بیست و سه پونصد دوازده هفتاد دوش هست و چهار سیصد بیست و سه پونصد دوازده هفتاد دوش هست و چهار سوالاتون راجب به سوپاتر خانم دورانی برم آمده کنیم شانده ازید بفهمی؟ بله خانم دکتر ما می‌دونیم صد تریلیون سلول تو بدنمون هست. شما گفتین روی هم رفته 20 تا 30 هزار جین در بدن ما هست. چطور وقتی می‌دونیم در هر سلول بدن دی‌ان‌ای وجود داره، چطور از یک قاشق خون میشه 20 تا 30 هزار جین تشخیص داد؟ والا جواب سوالت من دقیقاً ندارم ولی خب استراکت میکنن دی ان ا رو و میتونن این شما من فکر میکنم وقتی راجب جن دنتیک فیکس میکنید راجب حجم بزرگ دارین فکر میکنید نه نه من میدونم که تو جنا دی ان <متحق> ای هست 95 تو 250 میلیون بیس دی ان ا دارین ا ا سی تی, تی جی تو 250 میلیون در حد سلولام این دی ان ا وجود داره مثلا اگه یکی زنده باشه از هر بافتی میدونن دی ان ا ولی وقتی ماده خون و ماده ها مایع میتونن دی ان ا رو پیدا بکنن به همین جهت پس اگه 20 تا 30000 دقیقه دقیقاً شما حق دارین چون معمولاً 20 تا 300 ژن بعد در حد انسونی وجود داره برای همین جینوم تست داره میگیرن برای من میخوام بدونم از یک گاش خون چطوری به تمام این جنای بدن پی می برند. آخر یکمی یک تابولش مشکله. ولی که این جنای پخش شده. مثلاً جنای چش، اونای که مهمان دیانهاد در اینشون وجود داره در قسمت چش یا نقاط مختلف. اینو واقعاً میخوستم چون ما خودم بیاژ بیولوژی خوندم. بله. و خیلی مطالعه میکنم در این مورد. قدم خواستم یه مشعل برم وازه بشه چطوری. این امکان پذیره. با الان اتفاقاً دکتر جازری که نزدیکمان نشستن یه نویسی به من دادن گفتند روش به پی سی آر به کو پولیمریز چین ریاکشن این تکنولوژی هست که استفاده می کنند وقتی دی ان ار شما اکسTRACT می کنید این رو امپلیفایش می کنند یعنی کپی می کنند از روش چندین چندین بار هزار بار ممکن نزش کپی بگیرند و شما کپی مختلف از دی ان ار دارید و می تونید رو مغبه خون درسته این فرنسیک ساینس تا ممی پروما خونای قدیم که یک ذره دارن کپی میگیرن بعد میتونن دی ان ای افساد بکنن پس روی این کار تقریبا کپی بقیه ژینارام پیدا میشه یعنی امپلیفایشون میکنن و میتونن بخونن سپاسگوزا اسپشیالی شهدگان اجمن همینا رو گرامی میبریم به بخش دوم صحبت آقای دکتر علی الجزری جنبه دکتر جزی اسیستن پروفسوری مرکز سرطان USC لاستان سرجریکال انکولوژی با متخصصین جراحی سرطان و ایمنی درمانی ملانون ایمنی ثرپی سرطان پزشک می کنند. برای شاید بسیار جالبشون اپوتوزس رو مطالعه می کنند. پروگرامت سل دث. یعنی ازمیان رفتن با برنامه سی دلایکی باید بروند. اگه این پدیده درستن جر نشی سلول‌ها و بافت‌های ما گرفتاری خواهند داشت و تنظیم روش در رابطه آنها با سلول‌های موجود به هم می‌رسد و مختلف می‌شود. دیگر اینکه اگر دوخت جزری و گروهشان کشش می‌کنند، ویژگی‌های سلولهای سرطانی را پیدا کنند و ببینند هر گروه از این سلولهای سرطانی به چه داروهای و فاکتورهای جواب می‌دهند و درمان می‌شوند. دوچه‌جذری از وسایل سازمانهای علمی برگسته هستند. مقالات علمی در جنرالی مورد اول چاب کردند. اواط هوجاورز و متاد داریو کانون و سخنرانیهای علمی ایشان طرفدارای فراوان دارند. جناب دکتر جذری به برنامه امروز خوش اومدید. برای ما بگویید چگونه سلول‌های ماعصالت تبی خارج میشن و نسبت به سیستم ایمنی و درمان مقاوم و لجام گسیخته میشن. با تشکر از شما، دکتر নবাব به خاطر دعوتتون و از همکاران گرامی در رادیو ایران همچون که فرمودیم کار من در زمینه سرطان هست ما در سه نوع سرطان مختلف کار می کنیم دو نوع سرطان خون به اسم مالتپل مايلوما و نان هاتچکینز لیمفا ما که سرطان سلولهای خونی هستند و انها به صورت سرطان های مايه محاسب میشین یعنی در داخل جریان خون قرار دارند در یک قسمت امدهای از طول بیماری و مدل دیگه ای که کار می کنیم ملانوما یا سرطان بدخیم پوست است سرطان پوست 4 نوع هست و ملانوما بدخیم ترین که متاسفانه تا چند سال پیش درمانی براش نبود داروهایی که سیستم ایمنی رو تحریک بکنه یا داروهای کیموتراپی شیمی درمانی های متداول و رایج استفاده میشد که متاسفانه جوابگو نبود و دلیل اینه که این سلول های سرطانی به این دارو ها جواب نمیدن این است که وقتی که سلول طبیعی در معرض تغییرات ژنتیکی قرار می گیره که این تغییرات ژنتیکی یا میتونه به صورت وراثتی باشه و ما به ارث برده باشیم اونها را از والدینمون یا عوامل محیطی و یا مخلوقی از اینها باشه به تدریج ساختارشون تغییر میکنه و همونطور که آیدکتور خیلی جالب اشاره کردن به این پدیده ژنتیکی مرگ سلولی یا اپتوزیس مقاومت ایجاد میکنند و یه قدم بعدا بریم. این پدیده اپتوزیس یه پروسه هستش که در طول رشد و تکامل ما از وقتی که جنین هستیم همیشه وجود داره ساده ترین مثالش این هست که اگر این پدیده اپتوزیس وجود نداشته باشه ما به جای داشتن انگشت همون یه کارلی مثل پای اردک داریم یعنی بین اینها وب هایی هستش ولی این وب ها در طول تکامل ما در اثر این پدیده از بین میرن که ما اون دیجیت های انگشتامون ها رو دارا هستیم سیستم ایمنی رو شکل میده سلول های اضافی بدن از این طریق از بین میرن و متاسفانه یکی از ویژگی های سلول های سرطانی این هست که در طول زمان که مثلا ممکنه 5 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال طول بکشه یک سلول طبیعی به اون حالت سرطانش برسه به این پدیده ای مرگ سلولی مقاومتی میگن. حالا چرا این پدیده مهمه؟ به این دلیل که درمان‌های موجود و رایج برای بیماران سرطانی یا شیمی درمانی هست یا پرتودرمانی یا ریدیشن یا واکسن‌های مختلف که تمام اینها یک وجه مشترکی دارن و اون این است که نحوه که سلول های سرطانی رذبی می ورن از طریق ایجاد اپپتوسیس در این سلول ها هست خب پس وقتی که مقاوم بشه مشکل دیگه اینه که متاسفانه هممون کم و بیش شاهد بودیم بیماران سرطانی داشتیم دوستان اقوام نزدیکان یا شنیدیم که حسه درمان قرار میگیرن یه خرده حالشون بهتر میشه خوب میشن بعد متاسفانه بیماری برمیگرده یا شدت بیشتر پیدا میکنه و سرانجام با استفوت بیمار میشه و دقیقاً این پروسه اپپتوزیس اینجوری نقش کلیدی و حساسی داره به این دلیل که سلولای سرطانی اون درمانی که میگیرن به اصطلاح میمیرن اول اپپتوز میشن و از بین میرن ولی بعد از این مدت مقاوم میشن به این درمان و تحقیقات من کار من دقیقاً همین جاست که دو سوال خیلی پیش پا افتاده و خیلی ابتدایی رو جواب بدم که چرا سلول‌ها مقاوم میشن به درمان‌های مختلفی که داریم و سوال دوم که ما گروه ما سعی می‌کنه انجام بده این جواب بده این است که حالا که مقاوم شدن چه جوری دوباره میتونیم اون حساسیت اولیه‌رو درشون ایجاد بکنیم به اصطلاح سنسیتایزشون بکنیم به اپوپتوزیس که واسطه سیستم ایمنی و داروخوا هست. بسیار عالی. بخش دیگه از کار که شما می‌کنید اینه که سلول‌ها ویژگی رو ویژگیاشون رو تعیین می‌کنید که رندوم و کورکورانه دارو داده نشه در کیموتراپی غیر بلکه اختصاصی تیلرد با من میاد در رابطه مسئله ای که در رابطه با شیمی درمانی هست اینه که شیمی درمانی یک به اصطلاح درمان سیستمیک هست یعنی از طریق جریان خون دارو داروهای ضد سرطان وارد بدن میشه و در تمام بدن گردش میکنه و این خب بیا مثلا عوارض ناخواسته داره و اون به صلاح بهش میان تاکسیک ساید افکتس یا عوارض سمی جانبی همه ما میدونیم که موها میریزه موژها میریزه ناراحتی‌های گوارشی ایجاد می‌کنه برای اینکه این, این مساله شیمی عوارض جانبی شیمی درمانی رو ما به صلاح برش غلبه بکنیم و بتونیم یه مقدار اسپسیفیک‌تر و به صلاح از همونجوری که آقای دکتر فرمازدن تیلرد اهم مدیسن باشه کاری که می کنیم بهش میگن تارگت تراپی به این ترتیب که شما سلول های سرطانی رو از بیمار میگیرین یا سلول هایی که در محیط کشت آزمایشگاهی هستن و اینها رو بررسی میکنید که در مقایسه با سلول هایی که در ابتدا به یک درمان جواب میدادن چون بررسی میکنید که در طول زمان چه تغییرات ژنتیکی در این سلول ها ایجاد شده چه ژن هایی میزانشون افسایش بده کرده یا چیجن های میزانشون کاهش بده کرده که باعث میشه اینها به داروها مقاومت پیدا بکنه. ب... به نظر من این مهمترین قسمت کاره به خاطر اینکه وقتی که ما بدونیم چیجن های داده میزانشون داده تغییر تحویل شده خیلی راحت میشه بر علیه اونها داروهاي درست کرد و مراز استفاده قرار داد. و این دقیقاً یکی از کارهایی هستش که در چند سال اخیر در زمینه حداقل بیماری ملانوما به صلاح یک بریکترویی بوده یعنی یک تحول عظیمی در این بیماری رخ داده و اون این است که مشخص شده در سطح سلول‌های سرطانی ملانوما یک مارکر به صلاح هست که این مارکر اه، اه، توسط سیستم ایمنی شخص شناسایی میشه الان کاری که همکارا در یو سی ال ای انجام دادن این است که این مارکرها رو شناسایی کردن بر علیه اونها سلول‌های سیستم ایمنی بدن رو فعال کردن تعداد اون سلول‌ها رو در محیط کشت آزمایشگاهی افزایش دادن یعنی مواد مغذی و هورمون‌های رشد و سایر مواد مورد نیازشون رو بهشون دادن این سلول‌ها تعدادشون زیاد شده و همون سلول‌ها رو به مریض برگردوندن و مریض جواب داده. این درمان خیلی به اصطلاح تارجت تراپی و خیلی مخصوص فقط سلول‌های سرطانی هستش. بسیار سپاسگزار دوستان ایدن جون خطر باز می‌کنه. پرسشاتون از آید فیچر رئیس دکتر خانم دورانی راجع به ژنتیک کانسلینگ و همین تارجت تراپی رو پاسخ بدیم. بریم با بغایا برگردیم اینجا. همین چهارشنبه ساعت 2:30 بعد از ظهر دکتر سهیل مغظار مهمان برنامه کارشناسان هستند و درباره وزوز گوش، سرگیجه و کم شنوایی با شما سخن خواهند گفت 310 659 1212 Get social with 670 AM KIRN We'd like to hear from you. Join us on social media. Just go to our website www.670amkirm. dot com. At the top of the page, you'll see our social media links for Facebook, Twitter, and YouTube. Click on them and join us. Get social with six seventy AM KIRN. She said after the end, Los Angeles. سازهای دانش برنامه‌ی از هفتمانه وصدان و پژوهشگران ایدونی همه آن گروهی پای گفتار ساکرخانه نامه دورانی که در مدت جناتی کانسلینگ اکسومسیکوئنسیک برای من گفتن و آقای دکتر علی جزیری که راجب اپوپتوز مارگ برنامه‌ریزی شده سلولا برای خوب مالکاردن بافتا وادارم در تارگید ثرپی که تشریح بدن بیماری زارتان، اون سلول زارتانی بهترین دارو و فاکتوری که میشه مهارش کنه و بکاریم. تلفن 323 پنسال داروزدا هفتاد دوش استوچار. 323 پنسال <مساد> داروزدا. دکتر جزیری. یه نکته خیلی کوچیکی دیگه هست و اون این است که در بازه همین ملانومال بامون یک مدل مثال بزنیم. چهار پنج سال پیش داروی به بازار آمد بسیم و مرافنه که این دارو برای اولین بار خود می ترکت ترپی در بیماری ملانوما دارد. به این ترتیب که نشون دادن شش تا هفتاد درصد مریزایی که ملانوما دارند یک تغییر جنتیکی خاصی در این سلولها هست و این دارو بر علیه اون سلولها عمل می کنه، بر علیه اون تغییر جنتیکی عمل می کنه و موجب مرگ سلولی می شه. مختص این دیدینه که متاسفانه این دارو خیلی خوب جواب میده یعنی ظرف 15 روز تمام اون و به اصطلاح لیژن های مریضی و حتی اون توده ها و گدد که متاستاز هم دادن از بین میرن ولی بعد از 5 تا 6 ماه این مریضی برمیگرده بسیار خطرناک تر و خیلی کشنده‌تر هست و باز این نشون میده که همون سلول ها به اون اپوپتوزیس مقاومت ایجاد کردن و ما نشون دادیم برای اولین بار در آزمایش در یک سیستم آزمایشگاهی که اگر یک داروی دومی به این ترکیب دارویی اضافه بکنیم ما خیلی راحت میتونیم اون مقاومت اولیه رو در هم بشکنیم و از بین ببریم پس این نشون میده یک مجموعه از اطلاعات ژنتیکی اطلاعات راجبه علم پزشکی شیمی درمانی، ایمونو ثرپی، همه اینها و دست به دست هم بده که هم کارای متفاوت با هم کمک بکنند کار بکنند که از من این ملزی‌های نگفوار رو ریشه کن با کن. بسیار سپاس گزارم. تو سازی رو خطا هستین بفهمید؟ الو. بفهمید. سلام. دو. مرسی که تلفنمو گرفتین. آقای دکتر من به پزشکی رفتم. نیست اگه سالی یه جراحی عجیب غریب دارم مطرح می‌کنم. ببخشید منو. من حسامبیر نام ایو بوران تی روتین بلاد تست. دکتر میتونه تشخیص بده که دی چیزی فرنی گرون آون مثلا کی بات پین پوینت کران ببینن. آیا سارا خون هست یا نه؟ م. احتمالاً به‌طور شما روتین بلاد تست به نظر بنده خیر به خاطر اینکه سوال این, سال این یه مقدار جنرال هستش وقتی که خب سرطان یه به اصطلاح سیمپتوم‌ها یعنی علائمی داره و متأسفانه تا وقتی که اون توده سرطانی یه مقدار پیشرفت نکرده باشه علائم بالینی خیلی سخت قابل تشخیص است ولی برای یک به اصطلاح کامل‌تر سی تی اسکن میکنن، پَت اسکن میکنن، یعنی یک مجموعه از تست ها هست ولی با تست روتین پزشکی خیر، مگر اینکه بیماری های سرطان خونی باشه که شاید از طریق اون تست سی بی سی یا کمپلیت بلاد کاونت بشه یک کلو های یعنی یک نشانه هایی رو پیدا کرد ولی صرفاً تیک کردم برات یک تست بالینی خیر. خیلی ممنونم. استادم. سếpه که زریم همه سوال میکنن که نقش عوامل محیطی و عوامل ژنتیک چند درصد است برای مثلا یه سرطان خاص یک بیماری متابولیک خاص چقدر عوامل متابولیک عوامل محیطی اثر دارن چقدر مطلب مواد... مثلا پیچیده ای که قدیم بیشتر ما میرفتیم روی ژنتیک الان مثل اینکه دارن میگن که عوامل محیطی هم خیلی موثره مثلا ملانوما که شما میگین همین داستان تابش آفتاب یه مسئله شده الان از یه طرف میگم که امروز vitamini D دریم چون که وانسکافی آفتاب نمیگیریم و نگران استیم یا نمیمی تو آفتاب یا پوشش میذاریم انسان بلاک میذره از طرف دیگه گفته میشه که اگر انقدری در آفتاب باشیم که vitamini D بسازیم حتما خطر ملانوما میبره بله و حالا بیایم بهتره که مکمل مصرف قدیمی پزشک من پزشکی من خیلی کم بود داریم الان چه جوریه این داستان یه چیز دیگه هم که یه دوست میگفت که جالب بود برام این بود که این سام بلاک رو میسیریم معمولی زیاد نمولید و که بره توی فوس ما همین کاور بکنه الان چه توصیه‌ای هست کجا می... کجا هستیم در رابطه با مردان و پیشگیری حداقل در رابطه با بیماری ملانوما نشوند ازش ذکه عوامل ژنتیکی نقش بسیار عمده و مهمی دارند و در درجه دوم تاپ شافتاب یعنی تاپ شافتاب خب به هر حال تشریع و تصدیق تشرید میکنه تش، می این مساله ولی تا اون به اصطلاح جنریک پردیسپوزیشن یا اون استعداد و آمادگی ژنتیکی نباشه این مساله یا زمان بیشتر میبره احتیاج داره که تاپ شافت مستقیم یو وی به بعدان بیشتر باشه یا اینکه اون میزان آن اشاره بیشتر باشه ولی به نظر من یک مجموعه ای از این دو عامل هست جنتیکی یا وراثت و عوامل محیطی. سرکار خانم دورانی چی دوست داریم برایم بگی از همون جنتیک کانسلینگ و اینکه گفته نگار خانواده ای فکم کنه گرفتار یه جنبه ژنتیکی هست. پردازش دنبال کانسلینگو دارم. الان بیمه ها چجوریه و ازشان در پوشاندن هر ژنتیک تست؟ اگر به طور خاص رو جهت اکستوم سیکوانسینگ سوال باد میکنید. متاسفانه خیلی خوب نیست. مم. تست بسیار گرانونی هستش مم. و آزمایشگاه‌های محدودی هستند که این رو ارائه می‌کنن. نیوزیلند اولین به اصطلاح مؤسسه دانشگاهی بود که این رو 2 سال پیش به عنوان تست بالینی رای کرد و اون اوایلش خیلی خوب بود. فکم کام نمی دونستند چه خبر، اپروو می کردن. ولی الان خیلی بسلاه چیز می دزند جلوی پا، سه می دزند جلوی پا که نبوده حتی من جاستیفایش بکنید و جاستیفیکیشنش نه که سخت باشه ولی هی سوال، هی سوال می دونید که نمریز اول بفرستی امروای بگیره، اول بفرستی می کنی. و شما ممکن استیفای بکنید که اگر من بدونم تشخیص چی هست، مریزو بی خود نمی فرسم امروای بگیره. می بینم که این این جنی که داره آیا اصلاً احتیاج م. به امراضی داره یا نداره م. م. و بعد میفرسم و این به ساده شی، پارادایم شفتی که م. در اثر این تست به وجود میاد یهزار هزش برای کمپانیای بیمه سخت است. You're supposed to do three jobs. بفهمید ریخته اسیم. بفهمید. میخوام می از دوایی دکتر جدید ریلود کنین. بفرستیم که آیا این خالهای پوستی موقعی که روشن می کنیم این ملانوما به وجود نیاد و تجویزیم هم می تونیم تشخیص بدیم که این خاله ها رو باقل مرف یا وقتی شیبشون تغییر بکنه یا اینکه رنگشون تغییر بده یه توزیه کودایی لات به فنا این و پیشگیری و چه آنتی اکسیدنتی می تونیم بخوریم که باقل مرف شاید کمتر احتمال این ملانوما بگیریم سپاش. ممنونم از لاتش شما از رادیو گوش میدم سپاس سوال بسیار جالبی کردین. من متاسفانه متخصص پوست یا دermatologist نیستم که بتونم به طور کامل سال قسمت اول سوالتون رو جواب بدم ولی معمولاً وقتی که رنگ و اندازه یک خال تغییر پیدا می‌کنه شما باید به متخصص پوست مراجعه بکنید. یک قسمت کوچیکی از اون بافت زنده رو بر می‌دارن که بهش میگن biopsy و ا با آزمایشات اون مشخص می‌کنن که آیا اون تغییرات سرطانی در این سلول ایجاد شده یا خیر اگر ایجاد شده باشه که خب درمان‌های دیگه داره اگر نه بعضی از انواع این خال‌ها رو خیلی راحت میشه از سطح پوست برداشت مشکلن در در رابطه با قسمت قسمت دوم سوالتون فرمودین آنتی اکسیدان‌ها بنظر بنده همه آنتی اکسیدان‌ها خوب هستن و منابع مختلفی دارم بلک بری، بلو بری، رزبری چند سال پیش زمانی که من دانشجو بودم ما روی یک ماده به اسم رزوراترول که این در پینات و انگور قرمز هست که مقدار زیادی اش در شراب هم پیدا میشه این نشون دادن که آنتی اکسیدان بسیار قوی هست به این دلیل که اولین تحقیق در افراد فلان سری بود که نشون دادن با وجودی که اینها پنیر زیادی مصرف می کنند که چرب هست، ولی نسبت به سایر ملل کمترین مرگومیر رو در اثر بیماری های قلبی اوروگی دارند که خوب این یک در شیت اختصاصی آیت دکتر نواب هست و شما می توانند بندر رو یاری کنند، ولی من نشون دادن که دلیلش مصرف این شراب هست. المن نمیگم شراب بخورید یا نخورید اون بس به میل خودتونه ولی آنتی اکسیدان ها همشون خوبند میزانشون آخه هر بنظر من هر چی بیشتر مصرفش بکنید بهتر چون حداقل این کاریه که خود بنده انجام میدم بسیار سپاسگزار ا ایدی اینجا نشون میکنن که وقتم تمامه بسیار ممنون جناب دکتر جزایی سرپرست همگانی امیدواریم که بازم در خدمتتون باشیم و این ببین فارسی شیواتون با اینکه هر دو در محیط انگلیسی زبان صحبت میکنید جوانید با این قد فارسی قشنگ و کامل و همه فهم گفتید مطلب بسیار بسیار سپاسگزارم سپاس گزارم سپاس این نکته خیلی کوچیکی رو خدمت جناب اندای عزیزمون من استدعا میکنم خواهش میکنم به عنوان یک هموطن انسان دوست همه موهایی که در کار ریسرچ و تحقیقات هستیم به نظر من سرفند به خاطر علاقه و عشق شخصی مون که این کارو می کنیم دلمون میخواد یه کانتریبیوشن ای به اجتماعی که در حیات زندگی می کنیم انجام داده باشیم ازتون خواهش می کنم در صورت امکان مراکز تحقیقاتی رو با کمک های مادی و معنوی خودتون یاری بکنید که ما بتونیم زودتر به اهدافمون برسیم بسیار علی خبر خوب دیگه این که هفته آینده سرکار خانم دکتر ناهید رازی که خوشبخت شرکتی در لایه‌ای درست کردن و همون تارجت تراپی رو انجام می‌دادن ایشون برام خواهان گفت از اونم باز تیلرد کیموथेراپی رو به درستی هفته خوبی داشته باشی مارش های دانش برنامه‌ای از انجمن استادان و پژوهشگران ایدان